شقرات شقرات فیلسوف انگیزنده بود شمس نیز همینطور یک متفکر انگیزنده ارفانی بود برای همی خاطر اهمیت فوق العاده دارد که هنوز ما درست آن را کشف نکردیم او دهندی معلومات و افکار نبود بلکه گرانیگاه هر فکرش تلنگور زدن بود البته همه دنبال تلنگور برای آتش شانی گوهر خیشتن نمی رواند. بلکه دنبال معلومات می روان. دنبال این می که حافظه خود را از انبار افکار دیگری بدون آفرینندگی پر کنند این است که از تلنگور فکری از بوسه اهریمن نه تنها به خود نمیآیند بلکه از آن نیز می مسئله امروزمانی که بیدار شدن و روشن شدن یا بیدار کردن و روشن کردن باشد همه مسئله از تلنگر انگیخته شدن است اکنون این پاره را از کتاب من اهریمن منوچهری جمالی خودم میخونم اونچه علت مرگ سقرات شد. آنچه علت مرگ سقرات شد. خیرفون دوست سقرات و دوست مردم آتن روزی در دلفی از خدا میپرسد که آیا کسی حکیمتر از سقرات در آتن هست؟ آیا کسی حکیمتر از سقرات هست؟ و پاسخ می که هیچ کس حکیمتر از نیست. این عبارت کوچک و کوتاه که سقرات سو... در حکمت از همه بیشتر است انگیزه سراسر زندگی سقرات می شود که چرا من حکیمترم؟ مقصود خدا از این حب چیست؟ این سخن بالش ابتخاری نمی شود که دل به آن خوش کند و بنازد که خدا هم مرا حکیمتر از همه نامیده است. اکنون که خدا هم تصدیق و تأیید کرده است که من در حکمت از همه افزونم پس باید همه به سخنان من گوش بدهند و از من بیاموزند و من حق دارم معلم همه باشم. چنین نتیجهی؟ سقراط از این عبارت نمیگیرد. چنین نتیجه‌ای سقراط از این عبارت نمیگیرد. سقراط چنین ایمانی به خود ندارد و سخن خدا برای او مرموز می‌ماند. خدایی که دروغ نمی‌گوید، محصولش از این حرف چیست؟ میان سخن خدا و واقعیت حکمت خودش تضاد می‌بیند. این سخن او را به آزمایشی میگمارد که سراسر عمر او را فرا میگیرد او میخواهد به خدا نشان بدهد که این حرف درست نیست و از این رو دنبال انسانی میگردد که حکیمتر از او باشد تا با لجاجت به خدا بگوید این حرف تو اشتباه است و این انسان حکیمتر از من است او چون یک حرفی از خداست فوری به آن حرف ایمان نمی آورد و حتی میکوشد با صداقت در تجربه و در برخورد با رهبران و بزرگان و مردم این دعای خدا را رد کند از این روز به بعد به فکر آزمودن آنها می افتد. به فکر آزمودن حرف خدا می افتد. و به سراغ هر کسی می که در اجتماع ایمان به حکمت و فکر و معرفت خود دارد و مردم نیز ایمان به حکمت و معرفت او دارند. در آغاز با سیاستمداران و دولت مردان آغاز میکنه مسئله او این است که آنها حکمت آنها ایمان به حکمت و معرفت به علم خود دارند مسئله شغلات آن نیست که فقط به آنها نشان دهد و به آنها اثبات کند که من بیشتر از شما میدانم. بلکه مسئله آن است که به آنها در پیش مردم به آنها در پیش مردم نشان بدهد که علیه ایمانشان به حکمت و معرفت خودشان و علیه ایمان مردم به معرفت و حکمت آنها چیزی نمیدانند. برای او این حرف کوچیکترین آسیبی به او نمیزند چون او خودش آشکارا میگفت که چیزی نمیداند و ایمان هم با آن نداشت و پیش مردم هم به عکس آنچه داشت عمل نمی کرد. ولی برای آن سیاستمدار و دولت مرد نشان دادن آنچه او میگوید جهل است رسوا ساختن و ننگین ساختن او بود از این رو هر کسی را که سغرات با این روشمی آزمود به او کینه می ورسید و با او دشمن می شود. بدین به دین نتیجه می رسد که همه مردان مشهور اجتماع بیچارترین افرادند و افراد پس اجتماع خیلی فهمیده تر از آنها هستند. این عبارت خدا را یک وزیفه برای آزمودن همه در حکمتشان و معرفتشان می داند. او حق دارد همه را بیازماید و این ایمان هر کسی را به اینکه معرفت و حکمت دارد متزرزل شازد پس از آنکه که همه رجال مشهور جامعه را آزمود و طبعا همه را رسوا و متزه ساخت پس از آن که همه رجال مشهور جامعه را آزمود و طبعا همه را رسوا و مفتزه ساخت به سراغ امه و پیشوران که خوبره در یک کار هستند میرود و به این نتیجه میرسد که آنها نیز از این خبری در یک حرفه این نتیجه کلی را میگیرند که شناسایی نسبت به همه کارهای مهم جهان دارند و حماقت آنها همون حکمت ناچیز را نیز میپوشاند و منتفی میسازد ولی این رسالت خود به آزمودن همه نخبگان و مشاهیر و مردم را که همیشه اگیخته از اون سخن کوتاه خداست مردم طوری دیگر تعبیر میکنه مردم می انگارند که سقرات مردی است که قدرت برای رسواسازی همه به ویژه رسوا و مفطح اساسیه نخبگان و شعرا و رجال و متفکران و سیاستمدارون سیاستمداران و, سیاست و مردان با در اجتماع دارد او این حرف خدا را سخنی نمی‌داند که فقط به خود و او مربوط می‌شود او این حرف را چنین می‌فهمد که خدا با این حرف امتیازی نصیب او کرده است او این حرف را چنین نمی‌فهمد که خدا با این حرف امتیازی نصیب او کرده است و او را به عنوان پیغمبری انتخاب کرده است بلکه نام بردن خدا از او فقط نام بردن از یک نمونه است خدا میخواهد بگوید که حکمت هر انسانی مانند حکمت سغرات ارزش چندانی ندارد و نام او را فقط به عنوان مثال و نمونه برده است خدا می بگوید که همینطور که صغرات نسبت به معرفت خود رفتار می یعنی باور دارد که چیزی نمیداند شما نیست نسبت به معرفت حکمت خود بیندیشید او این سخن خدا را یک دستور خدا برای آزمودن مشاهیر و رجال و نخبگان و نشان دادن به خود آنها و به مردم که آنها علا ایمان خودشان و مردم به حکمت و معرفتشون حکمت و معرفتی ندارند متره آخونده های امروز ما. و می و لحظه فراغت در انجام این رسالت به خود نمی بخشه. اگر کسی همین امروز پیدا شود و همین خار سغرات را انجام دهد به ویژه در ایران در مورد روحانیون به یقین پس از مدتی کوتاه جام زهر را به اونیز نیز نوشانید این سخن کوتاه خدا که سقرات حکییمتونین انسان است انگیزه ای می شود که سراسر زندگی او را تغییر میدهد. این سخن انگیزه ای می شود تا قدرت و نفوذ و اعتبار و حیثیت همه رجال و نخبگان و نامداران اجتماع را متزلزل ززل چون او از حکمت و معرفت خودش هیچ قدرت و نفوذ و اعتبار و حیثیتی نمیخواهد. آیا وظیفه فلسفه چیزی جز اجراه همین رسالت هست؟ آیا وظیفه فلسفه چیزی جز اجراه همین رسالت هست؟ و اجرا این رسالت که آزمودن همه و نشان دادن اینکه آنچه حتی خود معرفت ها و حکمت ها ایمان دارن که هستند نیستن می باشد؟ و آیا فلسفه حقیقی چیزی جز لعن و چیزی جز محکوم شدن در هر محکمه ای را با خود خواهد آورد؟ هنوز هم همه دشمن چنین فلسفه ایزنده ای هستن. آیا این سخن انگیزنده سخنی بود که خدا گفته بود؟ یا سخنی که اهریمن گفته بود یا سخنی بود که خواهی به تقلید از اهریمن گفته بود